بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين و وصحبه و صحبه أجمعين أما بعد فنشتا أز مسائل إيمان رخوني أز أكوان إيمان منذ خريش و إيمان بقضاء وقدر قدر إيمان بقضاء وقدر قدر أن تؤمن بالقدر خيره و شره فنشتا چارتا رخ داره قضاء وقدر فقط لأيه قبلة كمان إيمان بقضاء و قدر رسلو بكنام إن حدیثی که الان در بحث ارکان ایمان اومده بود قال مال ایمان قال ان تؤمن بالله و ملائکتی و کتوبه و وقدر و یوم قدر و در حدیث جبریل اومده حدیثی که عبدالله بن عمر محبی کنه ابن عمر این حدیث را وقتی بیان نمود که قدری ها کسانی که متأثر به فکر فلسفه شده بودن اومدن سفت علم را خلاص نفش این فقط از مقدمه بهتون بگم وجه شاهد ان تو بر قدر خیریه و شریه هست در رد قدری ها کسانی که گفتن خدا نمیدونه چه میشه و سردان ما خودمون خالقه اعمال خودمون هستیم ما خودمون خالقی خدا کاری ای نیست این شبهه به وجود ما در زمان عبدالله بن عمر در اواخر قرن اول ابن عمر در استدلال به قدر سابق استدلال به اینکه علم سابقی از طرف خدا بوده و ثابت. ومات بإنقسمة الحديث استدلال كارث وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والدليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر بعد أن تقول مرتبة السبوم كذا يكملون مرتبة إحسان المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد بعد مياد والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم توأخرش كن شاء الله أصل حديثي حديث جبرائيل هذا در بحث تعريف إسلام تعريف إيمان وتعريف إحسان من الآن ما درب تعريف إمرم قبل قابلنا بحث إسلام وكادين بحث النماذج وجوزوا ونار وكادين بحث إسلام أعمال ظاهري بعد بحث ایمان و بعد بحث احسان میاد بعد دلیلی که بعد این سه تا رکن اومده اسلام و ایمان و احسان دلیلش حدیث جبرئیله که این کل این حدیث را عبدودونه نقل کنه بخاطر شاهدش که اینجا هست انتم ان من بالقدر خيره و شره که دلیل از قران هم داره ان كل شيء خلقناه بقدر ما گفتیم ایمان 4 تا ایمان به قضا و قدر 4 تا رکن داره. رکن اولش علیم بودن خداونده. خداوند علیم بوده قبل از این که مخلوقاتی به وجود بیان. خدا خالق بوده قبل از اینکه مخلوق به وجود بیاد. اسم‌های خداوند قدیم و ازلیه. یعنی قبل از اینکه خلق به وجود بیاد خدا خالق بوده. یعنی خدا صفات ذاتیش ثابته. صفات اختیاری نیست که مثلا بگیم که یک صبح آخرشا رو بیاد به دنیا بره بالا یا به مصیبر عرف بشه. صفات ذاتی همچنان با او, با او هست مثل دیدن، شنیدن صفات ذاتیه. سعی و بسیار نیست که میذاری چیه و هوا نه اینکه بعد از که محلوقات خلق کرد سخن با خدا گفتن خدا اونجا شد سعی نه صفات خدا ذاتیه. علم علم خداوند یک چیه؟ ذاتیه. به خاطر همی خدا و میداند آنچه شده و آنچه میشه و آنچه نشده اگر بشه چطور میشه؟ مثلا الان اگر ماشین نباشه یا موبایل نباشه چطور میشه؟ خدا میدونه آنچه که میشود در آینده هم میدوند چرا انچن رسول الله صلی الله علیه و آله خبر دادن و خودش هم خبر داده کذابون و دجالون می نسا و میاد نساء کاسیار زنان کاسیات و آریات میاد نه یاد می اون مسائل ها چیزایی که رسول الله صلی الله علیه و آله خبر داده از آینده از اشراط های قیامت که همچنان ما میبینیم و خواهد شد که ندیدیم بده خداوند علم سابق داشته خدا خداوند علیم بوده قبل از اینکه این, این علم به وجود بیاد قبل از اینکه رخ بده این رخ داد ها را ما ببینیم و آیاتی که دلارت بر علم سابق خدا دارد بیده زیاده بحثی که خدا عالم غیب و خداون استفاتش علیم بودنه زیاده که نیاز ریست که الان ما اینجا ما بحث علم خدا را بگنیم و عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو و يعلمها في البحث وما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها هم جيدة خضاء من بحث الدنسان وعلم سابق الخضاء آياتك دار برشا سيادة إن ركن أفضل علم ركن دوم كتابات لأجلوح محفوظ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ أفضل الشيء علم خضاء علم سابق ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. عبل علم بعد گفت کتابت. کتابت در کجا؟ در لوح محفوظ. وقتی که اولین چیزی که خدا سبحانه میگه قلمی که دستش میده همه چیز رو بنویسه در لوح محفوظ. ان ذلك في كتاب. ان ذلك على الله يسير. این ساده بود، آسون بود برای خدا. چون با توجیه علمی که خدا به اون قلم داده بود، اون قلم نوشت. و در صحیحه مسلم داریم از حدیث عبدالله بن عمرو بن عاص که قرائت بسیار رسول الله صلی و سلم فرمود كتب الله قادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات به ب 50000 سنه هزار سال قبل از آفرینش خداوند قدم را خلق کردن میکنه و هر چیزی که در آخر رس میدهد را اون قلب نوشته همه چیز نوشته من 50 سال عمر میکنم ولی که در سن 40 سالگی من سری رحم را انجام میدم عمر من یک سال دو سال سه سال اضافه میشه هر چیزی این الرجل لا يعمل 70 عام بعمل اهل الجنه ثم يختم به عمل اهل النار فيدخل النار شخصي افتاض عمل بهش انجام میده پس خاتمش با عمل جهنمیونه جهنمی میشه خدا میدونه این اخلاص داشته اعتقاد به علم خدا و کتابت خدا سبب میشه انسان همیشه اخلاص را مراعات بکنه همیشه بترسه شاید پاش بله شاید خدا نوشته که جهنمی باشه سبب میشه که انسان تلاش بیشتری بکنه برای اخلاصش بعضا فکر میکنن که نه اینها سبب میشه که انسان اعتقاد داشته باشه که مجبوره مثل یک درختی که داره تکوم میخوره قبلا بوده حالا خدا نوشته که من این گناه رو انجام بدم خلاصا مش فقط من دارم انجام میدم خدا که اصلا نوشته حالا میاد این از های مشرکین بود که خداوند در قرآن میاره و بعد پاسخشون هم میده رکن سوم ایمان به قضا و قدر ایمان به مشیت الهی هست مشیت سابق خداوند در قران میگه و ربک یخلق و ما یشا و یختار خدا مشیت داره یعنی داره و تش اون ال ایشا اگر خدا نخواد شما نمیتونید خداگر نخواد کوونه اگر نخواستید که من دستم بالا بکنم نمیتونستم خدا اگر بخواد دستم فلک بکنه میتونه نمیتونه؟ میتونه مثل اون شخصی که را سا اون گفت بهش کل به ییمینک لا سطی قال نه سق کولا دستش شد شده نشود دستش فلش شد. گفت با دست را رو گفت نمیخورم ب نتونین همین نتونی دستش با اراده خداوندی. رقوبت خداوندی چی شد؟ فلج خوش این مشیئت خداونده خداوند هر وقت بخواد کن فا یکون میشه آیات گفتم زیاده ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلا ولو شاء ربک ما فعلو فذرهم ما يفترون هو الذي يصورکو في الارحام کیف يشاء هر کدوم از ما یک طوری مرا خلقت که یکی بلوج، یکی کورد، یکی ترک، یکی عجب، یکی عرب مجلسم از همه نو داریم یکی موش یک شکلی یک رنگی، یکی یک چهه که چشمشکی بینیش. این اختیار توش داریم اختیار توش نداریم. ما اختیار نداریم که کرد باشیم یا ترک باشیم. ولی که اینکه من بیام اینجا بشییننم با اختیار بود یا نبود با اختیار بود. با اختیار من اومدم اینجا با اختیارم دستم بلند میکنم با اختیار دارم پایین میارم. با خاطر همین خدا نبی اصل مشییت رو از ما نمیکنه. گفت ما تشاؤون الا ان يشاء الله یعنی شما مشیئت اگر خدا بخواد هم کونن هم شرعت هر چیزی که بحث کونی و شرعیش به جیلی خودش باید بکنیم چون یک سری مشیعت ها و خواسته ها هست خواسته های کونی هست یک سری خواسته ها خواسته های شرعیه خواسته های کونی خداون کن فیتونه خورشید از این ور طلوع بکنه از اون ور غروب بکنه اینا خواسته های کونیه خاصه کونی, کونی اینکه اگر تو نخوای هدایت بشی قلب کُلُم بشه مثل در گوشی که روی آب بذارن هی توش نره. کسی که نخواهد و من یورد که ایضله یجعل صدره ضیق حرجان کند و یسعادت فسم. خود بشی کونان در قلب در قلب بسته میشه. این مشیت کونیه. توی مشیات کونی دیگه خیر و شری توش نیست. چون برای خدا اصلا شر نسبت داده نمیشه. ما داریم در دعای و جه داریم که رسول الله سلام میگفتند. و شر ولیس ایلیک شر به خدا نسبت داده نمیشه. ابلیس شر برای ما شر ولی برای خدا شر محضیس. ابلی سبب میشه ما جهاد بینیم خونمون رو فدای اسلام بکنیم توش هست ولی این خیریه نسبیه برای شر محض ولی سبب میشه که شما بنده بدونید خدا توباست خدا رحیمه خدا غفاره با خدا همین رسول الله صلی الله و شر رو نیست این شر از آل تو نیست پروردگارا شر از بندگانه به مکسبتیدیکم شر که به تو میرسد از دست بر برمیاد نه از دست ما تمام مقصر نیستی خود مقصری چون خداوندی که ابلیس رو خلق کرده به عنوان در درهای خیر و رحمتم گذاشته برایمون یک سری مشیت‌ها هست های شرعیه خدا میگه اقیم الصلاه خدا میگه آت و زکات لازم نیست که کسی انجام بده محبتش داره کسی اگر اون انجام بده دوست داره این کار انجام بشه ولی که کسی رو اجبار نکرده ما مکلف این جانبیم مشیت‌های شرعی چیزهایی که اراده کرده و از ما خواسته خداوند شرعاً ما در قسمتی که الان ما داریم ارادهی کودی خداوند ما مکلف هستیم خدا, خدا ما رو محاسبه نمیکنه چرا شما عربی چرا شما عجمید ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى خدا قال بتمر خدا مهم نجسده نجس بتنشف لقيافته اون چیزی که شما در اختیار داشتید محاسبه نمیشه اون چیزی که محاسبه میشه چیه اعمال اختیاری شما اون چیزی که خودتون کسب میکنید میره دنبالش چا رو بحث خلقه اول علم بعد کتابت بعد مشیت بعد آفرینش بعد آفرینش خلق ایجاد مخلوقاتی را ذاتشون صفتشون حرکاتش را خدا خلقت بکنه نکه تنها خودشون ما را خلقت بکنه حتی عملش عمل این دست خدا خلقت کرد این بدن به ام داد این عمل را کی داره خلقت میکنه کی داره ایجاد میکنه با مشیعت کیه بروردگار بخاطر همی خدا در قرآن میگه والله تعملون. او اینجا اومد یک بهانه ای والله و ما تعملون بهانه گیر گیریکی اوم گیر یهود یک شبهی در بیان مسلمان ها دااخنیه کسانی اومدن این شوه رو ترویر زدنکشن کهله خلق تعملون، اعمال ما اعمال خداسییم اونا یهود میگوستن نحن ابناء الله مسلمان هم این آیه رو دارن والله خلق تعملون، خدا خالق شما وماز اعمال شماست، ما کاره ما کاره نیستیم خدا داره خلق میکنه. زناکار خداست قاتل خداست همهشون همشون خدا هست. این شبهه رخنکه نکرد بین مسلمان ها سبب شد یک گروه دیگه تشکیل باشن که الان اینجا اومده عبدالعب نعمر جوابشون بده با ایراد این حدیث که بعد اعلان برایت ازشون میکنه اونها گروه مقابل اومدن نه کی گفته سر خدا میدونه از قبل خب مشیعت داره ارادت داره خلق ها فلنش داره خدا کاره این اسمات از دیگه ها حالا هر که بعد از ها اشاعره ازشون جدا شدن دیگه متوسله که به قول جهم شده واصل ابن عطال تابع قول جهم شد یا اومد تابع قول قدری ها شد قول مجوس با درای میگن قدری مجوسی امتا چون گفتن خدا نمیدونه که چی میخواد روخ بده من معتزله گفتن خالق اعمالمون ما خودمون هستیم این آیه درست نیست والله خلقكم یک جمله است و ما تعمل جمله دیگه خدا خالق اعمال ما نیست ما خود مخالفیم. اشواره جواب اینها دادن گفتن که نا خداوند در قرآن میگه دبای نسارا, نسارا میگوید لقد کفرالذین قالو اینالله ساله و ساله کافر شد آنها گفت اونها ایدون که خدا ست سه ست خالق قرار دادن ولی شماها ها چند خالق قرار دادید میلیاردها ها خالق خودتون هم همتای خدا قرار دادید خالق, خالق قرار دادید شما هم مشرکید اشعره گفتن به گفتا که این جمله استنافی است ناگرید هر کدوم یک شبهه‌ای برای خودشون در هر کدوم از این ارکان دو انحراف انکراب شدند در پله اول در علم خدا در علم علم از خدا ناس به این اعتبار که در خدا بگیم علم داره پس خدا عقل داره حل داره لازمه علم اینه با خدا یک جسمی داشته باشه که علمش توش نگاه داره چون خدا جسم نیست پس خدا نمی‌داره جبری اومدن گفتن خیر بحث بحث خدا نیست بحث بحث اینه این که ما با خدا با هم دیگه فرقی نداریم. ما و خدا یکی هستیم اون چیزی که ما انجام میدیم و اون چیزی که خدای انجام میده یکی است چون خدا در قرآن گفته الله خلقكم و ما, ما تعملون اینجا هست که این شبهه ها در اسلام اومد و صحابه اومدن جلوش بگیرن و کتاب ها نوشته شد در رد اونها در رد جهم صفان جعد و ندرهم واصل ابن عطاء و دیگران عصران اشعریه سران, سران ماتریدیه که اومدن یاذ اعتقاد جب ده دفاع بکنه یا اعتقاد قدر این دو تا اعتقاد متقابل هم اعتقاد جبرية حمز حمز حمز داري. داري. را اعتقاد جبریه و اعتقاد قدریه ما هم از شهر هم از حس هم از واقعیت حال خودمون میدونیم که ما مشیات داریم اختیار داریم کسی نمیتونه اختیار را از من نفی بکنه ما در جواب جبری ها میگیم جبریه میگن که فعل ما فعل و خدا چون خدا گفته والله خلاق ما ما تعملون چون خدا گفته اعمال شما رو خلق کردن این نیست که ما مشیت نداریم ما عامل نیستیم ما اثبات ميكنين هم از قران هم از واقعيت حال مفعالي مثلا خدا در قران ميده فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا فمن شاء اثبات مشيئه برنيانا كسيگه به خاطر هدایت بشه راهش ميتونه تيبه كنه يا ميگه لكم با مهسراتا حرف چي ميخواستيد ميتونيد هم در اون چيزي كه اثبات اختيار هم براي اختيار اراده فاطق الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا خدا میگه بشنوید تا عذاب از ما میخواهد یک کاری انجام بدید آیا اون چیزی که میخواهد در توان ما هست یا نیست فعلش اگر بگیم در توان ما نیست یعنی خداوند تکلیف ملائکه کرده خدا در قرآن میگه لا یتلف النفس لا یتلف الله نفسا ما در تکلیف نمی کنه مگر در حد بس تکلیفات تکلیفات خدا در حد بصحا اگر ما بگیم که ما نمیتونیم بشنویم ما نمیتونیم اتاعت بکنیم یعنی چی؟ یعنی خداوند تکلیف کرده تکلیفی که بیمعناست در صحیحاتی که خداوند تکلیف در حد توان انسان کرده اثبات توان دلیل بر این میده که انسان اختیار داره، مشیعت داره مثالها از شرع زیاده و ما رمیت از رمیت از رمیت ولکن الله رمع و ما رمیت نفی اصابت رمیه. اید رمید بسی که پرتاب کردی اون کسی که اصابت کی بود ولی فیرن الله رمان ما باید بین نصوص اول و آخرش نه اینکه یک قسمت از نص را بگیم ایک قسمت دیگر را را بکنیم نه اینکه که بگیم در بحث نماز بیام بگیم مثلا بالفرس بیام بگیم خداوند در قرآن گفته درباره نماز فوینون للمسلیم فوینون للمسلیم بگه یک شخص بگه وای بر ن درسته یک قسمت از ناس را بگیم دیگه گرا هم نه بحث وای بر گذاران چه نمازگذارانی؟ هالالین هم عصواتیم ساهم بحث چیه؟ بحث سه در نمازه نه بحث خود نمازه اینجا هم وقتی که بحث رم میکنه اصل رم را نفهم میکنه اثبات رم را نفهم میکنه باید بین دو طرف ناس جنب بانه. بس اثبات رمی برای رسول ایر رمی وقتی که تو رم کردی و پرتاب کردی در واقع حال خودمونم ما میبینیم یا من بخوام فلانی را کتک بزنم با اراده خودم دارم که تا کتک میزنم یعنی من اینجا اومدم با اختیار خودم نمیتونم این مسئله واقعه را انکار بکنم واقعیت حال ما اینطوری هست که ما اراده داریم اون کسی که اومد سلال کرد به قدر برای نفی قدرت از خودش مشرکین بودن. این شبه در از شبه مشرکینه و مجوز سیاقول الذین اشغکو لو الله ما اشغکنه ولا باونا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم ان تكذيبه لو شاء الله ما حدا خدا ميخواست ما مشكل نميشيد نه ما نپدرانمون بعد خدا ميگه كذب الذين من قبل كذلك كذب الذين من قبل كسانك قبلا بودن همش تكذيب كردن اگر خدا ميخواست ما هم هدایت ميشوديم خودش زحمنده ميکشه تلاش نميشه که نميکشه که هدایت بکنه از خودش نشسته نمياد نمي برای خوبی بسال بزنه بگه که آقا من میام نماز میکنم خونم شاید خدا نوشته که من نماز بکنم همیشه انسان برای فعل بعدش به قطع قدر قدر استدلال میکنه نمیاد میگه خب من روزه میگیرم چون خداوند نوشته من روزه دار باشم میاد میگه نه من مشرکم من بود میپراسم چون خداوند اگه میخواست مرا هدایت میکرد من مشروب میخورم چون خداوند اگه میخواست من مشروب نمیخوردم پس خدا دوست داره که من مشروب بخورم دوست داره من مشرک بشم و ما استلال مشرکین میگه خدا تکذیب شرع کذالک كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسه قل هل عندكم من علم فتخرجوننا براي این حرفتون دلیل انت تتبعون الا الظن ان انتم الا تخرسون ان مجرد جمال و ظن نه علم خدا هست در قرآن خداوند گفته شما مشیت ندارید اراده ندارید از خودتون نمیتونید کاری انجام توانی انجام یک فعل فعل کار ندارید چرا خدا بند اگر, تك... اگر تکلیفی نیست اگر ما اراده از خودمون نداریم چرا خدا بند پیانبران را برای بشارت و انذار و هشدار میفرسه چرا خدا میگه رسول مبشرین و منذرین لالا یکونه الله علالله حجتن بعد رسول و کان الله عزیزن حکیم چرا خدا بند رسول نمیفرسه کار خدا هم بیوله اگر ما انسان های مجبوری باشیم اگر ما از خودمون توانه یک فعلو نداشته باشیم و خداوند هست که این کارها رو داره انجام میده پس چرا خداوند پیغمبران رو فرستاد از باب بشارت و انذار گفتم یعنی اگر ما بخوام مثال ها رو از قران و از خنت بزنیم در جواب قدری ها و جبری ها زیاده رسول الله صلی الله علیه و وقتی که بیان میکنه از علم سابق خدا رسول الله صلی الله علیه و سلام قبل از اینکه خداوند مخلوقات رو خلقت بکنه 50000 نفر از آفرینش مشخص سر کیهشتی که جهنمی است صلب آدم گرفت کسانی بهشت گفت اینا اهل بهشتن دیگر دیگه اهل جهنمه صحابه براس یک اشکالی شد گفت در اینا رسول الله پس ما چه عمل بکنیم عمل پس چرا عمل بکنیم یعنی مشخص شده از قبل کی جهنمی که بهشتیه در لوح محفوظم نوشته شده پس چرا عمل بکنن رسول الله صلی الله علیه و آله گفت گفت فکل من ميسر لما قله قال اعملوا رد بر جدیه که چون انسان وقتی خدا میگه یا رسول الله میگه یعنی تو اختیار داری یعنی تو باید عمل بکنی چون اختیار داری این عمل و وزیفتی عمل کردنه فکلون مویسرون خلق له رد بر قدری ها هست که قدر سابق خدا علم سابق خدا را انکار کردن تو وظیفه عمل کردنه کارت این نیست که بفهمی خدا چی نوشته چی نوشته چه دونسته از آی نه ندونسته تو وظیفه عمل کردنه رسول الله صلی الله علیه و سلم با این دو جمله اعملوا فكل ميسر لما خلق قال جواب دو گروه را میده اعملوا جواب گروه ها و كل ميسر لما خلق قال جواب تقدریات ها که كنو... علم سابق خدا را انکار میکردن علم سابق خدا و همچنین اراده سابق و مشیت سابق خداوند را انکار میکردن خیلی زیاد آیاتی که در شهر داریم خداوند توصیه میکنه دعمل کردن الله اللهم استفعتم تقوی خدا در تا جایی که توانتون میرسه حالا ما بخوام مثلا مثال بزنیم از يعني مثال امور طبیعی که روح میده یعنی ما ملموسه برای ما و ما میبینیم مشاهد پیش ما زیاده مثال هایی که ما بخوام از مثال بزنیم برای اثبات وجود قضا و قدر چنانچه مثلا در زمان اعمال من خطاب داده بود کسانی که شناکمیشه کسانی اصلا احتجاجی به قدر میکرد مثل اون دزیت اومد دستشو خواست عمر رضی الله عنه قد بکنه گفت که قضا قدر بود قضا قدر بود خدا اون نمیشت من دزیت میکنن گفت که ما هم دستت قدر میکنیم قضا و قدر بود دستت قدر میکنیم اینم قضا و قدر بود هیچ وقت کسی در مقابل فعلی که انجام داده نمیتونه احتجاج بکنه به چی به قضا و قدر بگه چی بگه چرا تو این کار را انجام دادید؟ علا من بخوام بخوام بحث باز بکنم این بحث ها خیلی زیاده به انحرافاتی که پیش اومده خیلی انحرافات زیادی هست ما در قرآن جواب و پاسخ بر این شبه ها زیاد داریم من فقط خواستم خلاصه و خیلی چکیده از این مطلب عبور بکنم و این مطلب به اشاره بکنم در رد قدری ها بیش از این ادله در قرآن هست می سه فرموده خدا منکم من یرید الدنیا اثبات اراده به انسان کم من یرید الدنیا و کم من يريد آخره اثبات اراده به انسان, من انسان انسان اراده داره برخلاف اون چیزی که جبری ها میگن و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و شاء فليكفر اثبات نشاءت انسان کسی خاص کافر بشه کسی خاص مؤمن بشه من عمل صالحا فلنفسه اثبات عمل صالح برای خود و من اساء فعلیها کسی اصاعات هم بکنه به ضرر خودش ثابت میشه و ما رب بکر به من دل انسان میبینه در روزمره خرید میکنه نشست و برقاس داره با این و اون میره مسجد و میاد اینا همه اختیاره کسی نمیتونه نه بات بچه به قرآن نه مسالهای محسوس نفی اختیار از انسان بکنه و همچنین کسانی که اومدن نفی مشیعت را کردن به قسمت اول حالا بحث جبریه بود إرادته ماشيته رزق الصالح كذا بحث قدر يكتس نفي علم أصل خضوان كذا آياتي كده القرآن دلالات علم خضوان علم سابق مفاتح مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو خضوان مفاتيح علومه داره مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر خضوان مدون كذا خشكي ودار يهس وما تسقط من ورقة إلا يعلمها هيك ورقة يا زرخنيس كي بيوت المجر خضوان ميدونه علم خداوند، اون چیزی که خداوند میدونه و اون چیزی که رخ میده با مشیت بنده خداوند همش میدونه و همشی در قبضه دست خداونده. آن من گفتم این مسائل رو فقط همین طوری ازش رو بون میکنیم. اکتفاق میکنیم به همین قطعه. صلی اللہ علی محمد و علی محمد.